لا سیما لا سیما برای چه بکر میره به نظر شما؟ شما زمانی که میخواهید یه حکمی رو بیان کنید مثلا بگید دانشاموزان خوبند مخصوصا آقای زید اسم کسی رو شما نباردم خاطیم که ناراضی پیش نیاد. مخصوصا آقای که زید با لا سیما به کارش میگید مثلا شما میگید اطلابو مجتهدون طلاب تلاشگرند لاسی ما زیدون یا زیدین آره فردوتو تو جایزه لازی را بلا میخونی احب رجال الادبی و لاسی ما شعراء او الشعرائی دوست دارم مردان ادبیات را مخصوصا شعرا را خب اینجا الشعراء او او یعنی این دو تا ایراب میتونه داشته باشه میتونه مرفوع باشه و میتونه چه باشه منصوب باشه اعجب تو بالجيش ولا قائد قائده او قائدی، قائد الناس ولا سيما الفقراء او الفقراي شماره چار یک يوك یکافا المجد دون ولا سیما مجد دون خلوق او کریمون او مجد دی او مجد دان هر سئراب رو اینجا میشه داد اگر بعدش نکره بیاد هر سئراب جایزه بعدش نکره بیاد چی هر سئراب جایزه. اوحب سکن القرا ولا سیما قريتون على النيل او قريتين او قريتان قريتون قريتان قريتين هرسته چه هست ها جايز هست اجاد الخطباء ولا سيما خطيب حديث السن او خطيب او خطيبان شما دقق فرمودد انجا دلو از امسله را ورد بود در ستای اولی دو تا اعراب داده بود در ستای بعدی سه تا اعراب یعنی زمانی که بعد از سیما معرفه ای آمده باشد میتواند مرفو شود و میتواند چه شود مجبور. اما اگر بعد از سی... سیما نکره ای آمده باشد هر سی اعراب رو بگیره و مشکلی نیست حالا گوییم که چرا ببینید اولا در خود لا سیما رو بر اسما ترکیبی بکنیم که شخصی خودش خودشو بزور نگه داشته لا چه نوع لایی هست لای نفی جنس هست لا لای چه هست بله سی، سیه سیه چش هست اسمشه خبرش چه هست؟ خبرش همیشه این حصفه خبرش همیشه چه هست؟ است این ما چه هست؟ ما رو ما میتونیم سه تا چیز در نظر بگیریم اگر هر یکی رو در نظر گرفتیم این اعرابا به خاطر اینه ما رو میشه زائد در نظر گرفت؟ ما رو میشه چی در نظر گرفت؟ اگر زائدش در نظر بگیریم اون موقع اشعرائی چی میشه؟ بله پس سراران دقت بفرمایید اگر ما رو اضافی در نظر بگیریم میشه اشعرائی ولا سی ما اشعرائی چون این سی سیه اسم میشه سیه چی میشه؟ میگه مضاف میشه اسم که هست ولی مضاف میشه به چی؟ به اشعرائی ولی اگر ما بیاییم این ما رو چی در نظر بگیریم؟ موسو ما موصول یا مای نکره ما؟ چی؟ مای نکره که به معنای شیح هست به معنای چی است شی در این حالت ما نقش خود ما اون موقع نقش داره اگه زاهد نواش خود ما چی داره؟ میگی ما مضافون اله هست ما چه هست؟ خب در این حالت چرا پس از شعره او مرفوع بیشه؟ میگیم که آقا شعراء شعراء خبر هست مبتداشته شده محضوفه به این شکل لازی ما هم و من دوست دارم مردان ادب را مخصوصا شاعران را مخصوص. چه کسانی را پس هم میشه مبتدائی که در این مثال مناسبت هست که حس فس از میشه خبرش اشعاره مش چی خبرش؟ وامش نیست، وحید رجانی و لا سیما و نقش نداره. خب بزرگان اگر این ما رو حساب کنیم اون موقع جمله چی ما رو ما موصوله حساب کنیم بگو جمله سله میشه جمله چی میشه سله میشه. کدوم مثال؟ الان در توضیحات اولین هستیم بعد میریم آخری اگر اگر کلمه ای که بعد از ما اومده معرفه باشه دو اعراب داره یا رف یا جر جر بودنش که فهمیدید به خاطر اینه که این ما رو زائد در نظر گرفتیم مضافون اله هست رف بودنش رو هم فهمیدیم به خاطر این که ما میگیم این خبر هست مبتداش چه هست؟ حسب شده ولی این چه زمانی هست؟ زمانی که بعد از لاسی ما معرفه ای آمده بود که در سه مثال اول سه مثالی چندو اول به همین شکل است اما از سه مثال اخری یکافا المجددون ولا سیما مجددن خلوقه کریم او مجدن او مجددا انجا بعد از لا سیما مجدد اومده که نکره است جست سه اعراب می تواند بگیرد خب اعراب اعراب رفع و جر شک فهمیدید که چرا چرا مجرور میشه؟ آره همونان دیگه فرقی نداره فقط نصب شما الان دیگه نیاز دارید. اونجا مثلا چیزی اگر رفع باشه اگر مثلا معرفه و باشه. معرفه باشه معرفه باشه دو تا داره اگه نکره باشه سه تا داره. مال معرفه شو توضیح دادیم که چه چرا مرفوع میشه و چرا مجرور میشه مجرور بودنش به خاطر مضافن اله بودنشه مرفو بودنش به خاطر این که خبره و مبتداشتی هست حصفه این مال زمانیه که بعد از لاسی ما معرفه ای آمده باشد مانند اشعراق معرفه از الفلام داره ولی اگر بعد از لاسی ما کلمه نکری مانند مجد قریتون خطیبون آمده باشد که در ستم مثال بعدی میاد اینجا اگر مرفوع بشه همون حالت توضیح دادی مرفوع بله مرفوع و مجرور مثل پیشینه مرفوع به خاطر خبر بودنشه مجرور به خاطر مضافون اله بودنشه فقط میمونه منصوبش منصوب بودنش به خاطر اینه که تمیز دیگه واقع میشه میتونیم تمیز واقعش کنیم میتونیم چه واقعش کنیم؟ بله تمیز ما پس و خود ما رو هم گفتیم میتونیم زائد در نظر بگیریم. و میتونیم اسم موصول در نظرش بگیریم و میتونیم ما که همون نکره است اگر نکره در نظرش بگیریم اگر چی در نظرش بگیریم نکره میتونیم این کلمه بعدی رو تمیز کنیم که میشه مجددن یوتا یوتا القواعد ترکیب لا سيما لتفضيل ما بعدها على ما قبلها ما قبلها في الحكم میگه ترکیب لا سیما چه زمانی آورده میشه؟ زمانی که ما میخوایم برتری بدیم ما بعد سیما را بر ما قبلش در حکم مثلا بگوییم طلاب همه خوبند ما حکمی به اینا دادیم که این است که همه چه هستن؟ اگر بعدی ها رو برتری بدیم مخصوصاً زید پس ما زید رو از قبلی ها چی کار کردیم؟ برطری داریم پس الان, ف... الان واضح شد که لا سیه ما چی داره؟ چی کاربردی؟ بردی؟ اللحاز اعرابی هم که لا لا نفی جنس هست سیه اسمش هست خبرش همیشه محظوفه و ما رو اگر زائد در نظر نگیریم مضافن اله هست خب مز... اگر زائد در نظرش نگیریم برای سیه دیگه مضافه به سبتش چون به معنی مثل هست اعنی چه هست؟ اسم دیگه خوب هفته دو دو الاسم الواقع بعد لا سیما انکان معرفتا جاز فیه الرفع والجر ایراب شداره توضیح میده. میگه اسمی که بعد از لا سیما اومده اگر اسم معرفهی باشه در اون چه چیزای جایزه؟ هم رفع جایزه و هم جر رفع بودن و جر بودن رو توضیح دادیم لیس غیرو نه چیزی دیگر یعنی اعراب دیگهی درش جایز نیست و انکان نکرتن جاز فیه اوجه الاعراب ثلاثه اما کلمهی که بعد از لاسی ما اومده باشد اگر نکره باشد اعراب سگانه درش چه هستن؟ جایز چون اسم سه عراب داره بیشتر سه اعراب یا رفت یا نس یا چه تو اجه پس این بحث لا سیما به همین سادگی بود که رد شد و رفت.